حضرت حضرت صحیمون علی حی و حاضرن این محسومین همه شون روحشون آزاد هست و به الله هر کاری که لازم باشه انجام میدن فرق امام زمان صحیمون علی با دیگر حضرات این هست که ایشون حی هست جسمن هم زنده هستن و امام امام زمان ما هستن ما باید با حضور ایشون خودمون رو به کمال برسونیم درک حضور ایشون خیلی مهمه ظهور ایشون خب خدای متعال ظهور رو مقدر کرده معلومه چه موقعی این الله معلوم هست اما چون امام حیین زنده و حاضر هستن حضورشون برای ما امکان پذیره. که درک حضور داشته باشین خیلی مهمه